جلسه 45 پنجم از الله الرحمن الرحیم الحمد رب العالمين والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و علی آله و و در منطقه در مقام باطنه که علم با به منتزیت علمی به نحوه منتزیت عقلی منتزیت عقلی یعنی استناب به قاعده عقلی از اشتغال یقینی یا صدی از به این بایده اصولی ای و افتادی احتیاط تامیل یعنی اشتناب از همه اطراف یا ارتکاب همه اطراف چه در شباهات تحریمیه که یه اشتناب متقرمات و چه در شباهات وجودیه که ارتکاب متقرمات در مبابل نظریه منسطیقیت قبلیه علمه نظریه دومی که مطرح منسطیقیت عبدالایی است منسطیقیت عبدالایی مثل خیلیت احکام عبدالایی که تا الان کنیم جوزه احکام جوزیه حساب میشه در مقابل احکام عبدی که خود داره و جزئیت احکام و تفسیری داره که تفسیر مناسبش در محل بحث ما همان محبکیت و بلا قاعدم به اینکه اگر این نجمالی محبک باشه منتزیگت داره و اگر محبکیت نداشته باشه منتزیگت نداره بزار علم اجمالی بین دو مقوله علم تفسیری و شک بدویه مشهور در علم تفسیلی منجزیت مطلقه و در شک بدوی قراحت مطلقه ولی علم جمالی بین این دوتاست از یک طرف علم، یک طرف شک لایا علم من منحبه به علم یا من به شکل بزنیه خلاف شمع رفتن بکشد. منحبه علم تفسیری محل شکل نیست. عدم منحبه به شکل هم محل بحث نیست. و تمام بحث در منحبه علم که و سوریان حالا یا منجزیت علم اجمالی در ایده فکر هم همینطوره یا نیست بعضی از تو آتی که کاشق از اینه که مشروع این منجزیت افریقی علم اجمالی رو در نیته استنباطات فکری ببود نداره جزای این بحث مطرح تحت این انوان که علم تمسیلی متولد از علم اجمالی مسئلیت داره یا نداره یعنی در قدوث علم شکی نداریم و در قدوث یک علم تفسیری و تولبش از علم اجمالی بازشکی نداریم و تمام وقت در قدوثیت علم تفسیری متبدده از علم یعنی اگر عهد و ما علم تفسیری داریم که یکیش این یعنی علم اجمالی متعلقه به یک عنوان عهده ماست و علم تفسیری داره یکی از این یعنی دوتا یقینا نزیست این علم تفسیری متولد از علم اجمالی و چی یا نداره؟ این مهم بحث و هر اختلافی های شخص از چرا بوقع ها اختلاف داره مگه ماهی نیستم به من عقلیه علم اجمالی و من عزیزیت عبریه احتیاط تامه چه به نحوه ارتکاب باشه و چه به نحوه اجتناب باشه به اختلاف دارن این اختلافش صرف می داره به اون صرفش رو هم مسنده فایده تحت 6 تا از احتمالات بیان میکنه. و همین که غیر قابل قبوله این مقبوله اصولی در هیچ استنباطات ولو بهشت اصدیه نشه ولی به خیلی از آقا نمیشه ممتزم شد که مستند به منذیلیت ارمیه این باش. در همون پرعصه هم در مبحث امثال عربه هزمان آمی ما کردید که اگر این مجمالی به جنابت احد ما باشه غسل بر هیچکدام واجب نیست ولی اعتمام اهد همان به دیگری ممنوع و این تفسیر چه وچهی داره چرا غسل بر اینها واجب نیست به خاطر این که جنابتی ثابت نیست بعد اگر این ثابت نیست چرا اهد هما به دیگری اختیار کنه این فتاوا حزمش مشکلی، اینا چطور بپذیرم ان دوتا مسئله سه رو با چهار چطور بپذیریم و مثلا عقلی نطور نیست که بگیم بنای فقه ما بر جمع بین متفرقات و تفریق بین مجتمعات اون در تعبدیاتنوبه در مونمتی زیاد علم اجمالی که عقلیه این حرف هم از احد یا جنوب هست یا نیست اگه هر تمام آثار مفردت به اگر نیستی شد این از که در برای حرف دون محل افتیلاش دو تردادی یا یا اگه اینطوری باشه باید به اقتضای اینو بگن قاعدین به علیت قاعد اینو نگن و اینگه همه میگن اگه از مستند به این تمصیل باشه باید اونطور که چون شاید دلیلشتی بوده که به برنده این حکیب که حکیب خودش بودوششتی خواهد هم این حضورش خودش میکلدتی یا عرمتی اون وقتی اولی که یا خودش دوره یا دیگری نه اینکه امام بر و خودش همین رو میگن مشهور این همین مطلب دارم میگن دیگه پس چرا علامه درای صاحب جوایع دیگران مناقشه‌دان اینا به خاطر اون وقتی باشه که ما بحث چون توی مسئله اعتماد میگن که لاهدی نماز امام کاظم اگه ظاهرن نماز اون محکوم به صحته از خودش محکوم به بلکتان باید باشه نه. نمیشه نه. ما ببینده در احکام ظاهریه نمیتونیم بگیم هر دو نماز اون سعیه نمیتونیم بگیم واقعاً نمیتونیم بگیم ولی ظاهرن که نمیتونی بگیم ما از سالت و سحر رو هم در نماز امام هم در نماز خودم نمیشه فقط اونم اون گیر اون رو داره الان کل اینطور میگن میگن قصد بیگری اعتباری ما نداره قصد گردن دیگری بیم داردیم. ولی در اعتماع ما دو جمع میشیم. و اکنی در جمع میشیم نمیشه این ظاهرش خیلی عمیقه و زیباست ولی باطنش چی اگه باطن خوبیداش میپذیروند محقق خراسانه اینو میپذیروند ظاهر جواهر در نراقی می میپذیروند علامه در اکثر کتبش فتوا داده به جواز اعتمام حالا این مسئله شاید شما بتونید حد را حلی براش پیدا کنید اگه کنسی بتونه برای این مسئله را حل پیدا کنه که آقا اعتمام و اختداق امامت و امسال این ها خیلی مهمه. نمیشه به شخص که محتمل و جنابته اختدا کنیم بهش یا ما خودمون اختدا کنید نمیشه برای خوب مسئله دیگرمش دارم فرقه ما نصرش باید به تفسیلی باید مجمالیه در اون سایر موارس چیان لذا لذای راحت نمیخواد راهحل خیلی متقنی میخواد که اینطوری اگر مسلزم بود که مسئله اختلافی نمیشه مسئله اختلافی ربینه نمیتون مبتنی برای ایندیت و باشه چون همه بایدن به این تفسیل برای سپن و چهار مورمه همه باید به ایندیبیت رضا تفصیل شما با مردان نام نمیسته حالا این مسایل رو هشتا مسئله رو بخونیم بعد شش تا حالت هم میاره میگه قرآن بخونیم بعد بینید چی میشه دیگه و دوام به حسول به همین مسایل یعنی ما باید بکنیم اینا رو حملش کنیم <تصفح> آره فتاوا همونه الان آغازی ها اسکهانی مرموهای خویی امام دیگران این نیگر فرقزا بین ایناست اینا در اون فرع سوم و چهارم تعلیقاتشون نگاه کنن قاید به فر نیستن فرع سوم و چهارم قاید هم ببین اوناییم که قاید به این نه اونایی که قاید به میشن آخرش میگن از جایی میشه حالا در مقام سلود نشه در مقام اصداد میشه اگه ما این به خدا هستن میگن از دنبن میشه بنابراین فرق اساسی به این دو مثلک این, این اسمشون خوبه مثلک علمیت و خدا در حد اصمه این هی از ما سمیتونوها به ها و آبا ما انزل الله به ها من سلطن هیچ سمره ندار ادلیت و سوریه واقعیت ندار اسمه اسمیه که میتونه ده سال مار علاق ما میتونیم حول محور ادلیت و اختدا ده سال امرون رو باطل کنیم و الان فتاوار نگاه کنیم فرع بوم و چهارم از رو حتما نگاه کنیم و ده بیستام هاشی نگاه کنیم این مسئله که اشتضاق الگیه باید در مقام افتاح معلوم بشه دیگه تا چه هرکی شده تا چه هرکی نشده در حق اسم سوریه و خیلی سمره فقهی عملی بهش متوفق نمیشه اگه این شد که میگفتن آقا فرق ما در اختلاف بین الگیت اختضاست اینجا باقی نیستن مسئله اول مسئله اینه که یکی از مسئله که اطلاع شده علم تفسیری متولد از علم اجمالی اعتبار نداره علم تفسیلی متولد از علم اجمال قفی احده ما نجسه یک نجس در بین است. بعد اجتناب از احده ما یا هر دو لازمه به نحوه علم تفسیلی و اینه علم تفصیلی متولد به در علم اجمالیه و فروعی پیدا کردن که در این فرو علم تفسیلی متوضع به در علم اجمالیه مسئله اول مسئله قول به خرف اجماع مرکم اجماع بر دو قسمه اجماعی یا بسیطه همه اتفاق میکنن همه ها همه علام هایان حالا بر فرض سبوتش این که اجماع مرکبه مرکبه یعنی اختلفت الامت و علا قوله ایتا امت دو دوتا قول بیشتر نداره در این مسئله نسبت به نماز جمعه یا قائل به تحریم یا قائل به اون جمعه قول سبو میدرکار نیست اگر کسی بخواد این اجماع مرکب رو خربش کنه پارش کنه و احداث قول سالس کنه قائل به جواز بشه قائل به اباهه بشه قایده به استحباب بشه به خاطر احکام تضاف برن با دیگه اون خرف اجماع مرکم و احداث قول ساله به این معنی است که علم تفسیلی متولد از علم اجماعی رو چیه چون وقتی اختلافت امتا علا قوله امام علیه السلام یقینا با یکی از این دفع است یا قایده به حضوره یا قایده به حلمته من اگه به براعت یا جواز یا استحباب یا کراحت بشم مخ خرق اجماع مرکبه خرق اجماع مرکب رو بعضی ها قائل هم. وقتی قائلن هم معناست که علم تفسیری متولد از علم اجماع قائل نیستن و حتی شیخ توسی تعالی الله و قائل به اینه که در مواردی که اختلافت از الاممت و علاقه اونه واقعیه تأخیر واقعی هم میگن هم تأخیر واقعی هم یعنی مخالفت با علم تفصیلی متولد از ظلمیش تأخیر ظاهری هم اگه باشه باز میگن یا باید قائل به وجود بشیم یا باید به حرمت با بشیم اگر شیخ توسی بیاد قائل به تأخیر بشه چه ظاهری و چه واقعی مخالفت کرده فرقش مایمرکب کرده و خرمش مایمرکب یعنی علم تفصیلی متولد از من دیگه بله ظاهرا باشه خب یه مقوله خودش دیگه فراتر غیر از وجود غیر از عمله نباید بگه نباید بگه ظاهری هم نباید بگه یعنی تخیل ظاهری هم نباید بگه فخیره ظاهری هم, هم غیر از وجود و غیر از شارع اون چیزی که بر ما واجبه تعییناً وجوب یا تعنا حرمت تخیر منتفی به هر دو قسمش شما هم ن داره به تخیر بشي باید بي ما یعنی یا قال به وجوب بشید یا قال به حرمت بشيد بیا بي اغا مخیلی تخیر غیر از اون چیزی که بر ما واجبه متعینا واجب به یا وجوب یا حرمت ما قال به تخر بشیم ولو ظاهر مالفت خلق جما به خنه بدر نمیخور عمر مل ننه خیلی بدتره اون خرجمون مرکب میه، اجماع مرکب بوده. یعنی اختلافت الومت طلب اون یعنی چی؟ این حرفا چی؟ اساس خیلی از عمرها رو تلف کردی نظریات. اهتاس قول ثالث نمیشه کرد یعنی چرا نمیشه کرد؟ اگه تعهدیات که یک نظریه، اگه جزه اوغلاییات که دهتا نظریه میشه برد. این قول ثالث امثال یک نظریاتی بوده دیگه تاریخ مستقش گذشته مال الان نیست فایده ای هم نداره ولی برای یه تصمیم بشه ما هم مثال اولا رو از بسایل اینن نوشتیم و توضیح هم دادیم خیلی اهمیت همونست خیلی اختلاف می من یادم یک هفته استاد ما در رابطه ما که شیخ توسیق آرده به تحصیل یا واقعی عمرها رو چرا تلف کنیم چه دردی می هالا شیخ توسی چه قائل به تخییر واقعی باشه چه تخییر ظاهری باشه چه ثمره برش مترتب میشه چه قوه استنباطی به دست من میده از خود شیخ توسی هم الآن خودش نمیدونه تخییر ظاهری یا تخییر واقعیه ون رو فکر نشده قائل به تخییر شده حالا بگن آقا تخییر ظاهری تخییر واقعی اون به تفسیری که معاصرین دادن از ظاهری و واقعی نمیشه به گردن کسی بزاریم و مسائلی که خیلی اهمیت نداره وقت خدف نکنیم مسئله دوم حکم بعضی از فقها به جواز ارتکاب هر دو مشتبه در شبهه محسوره چون شبهه ها محصور؟ یا شبهه غیر محسوره تعریف محصوله و غیر محصوله تا ده تا ذکر شده این شبهه محصوله چی میگن؟ به قللت اطراف میگن به قصت اطراف میگن به محل اطلاع بودن میگن به محل اطلاع نبودن میگن به دفعی میگن به تدریجی میگن به چی میگن یعنی ما یه آوردیم خودمون تو تفسیلشون میگن شبه محصولی یعنی چید محصوله محصوله اقلیه محصوله وقلایی محصوله از کجا می فهمیم از کجا نمیفهمی فهمیم چیه؟ علاوه کل تبیین تفصیل این نظریات رو در جزوهای های سابق نوشتیم بحث نیم خود مرور کنیم در باب اعتیاد شوبه محسوره رو تمام تفاصیلش رو در مشور آوردم که محصول بوده یعنی وقتی که شوبه محسوره تفصیل چیه تا ده تا تفصیل براش ذکر شده و این خودش یک یه یک یه شوبه محسوره و غیر محسوره اینطوری ما بیان 10 تا تفصیل از این خودش تشبت و تفکار میاره ما انسجامه بر یک مبنا نمیتونه پیدا کنیم ازایی واقعی گراهی میخواست که شبه محصوله یعنی چیه شبه محصوله اون یکی شبه غیر محصوله اینها رو یک تفسیر ادبی براش یک نموانه حالا به صورت اصل موضوعه اگر اطراف شبه محصوله باشه یعنی دو تا باشه یا سه تا باشه که محل افتکار با خودمه و میتونم همه رو لفعتا افتکار بکنم مثل اینکه دو تا بباسه هرگر رو میتونم بپوشم یا دو تا کار سه رو میتونم استفاده کنم و خارج از محل افتلاع من نیست حالا تفسیل دقیقه داره اینه به صورت از که اگر دارم اگر اطراف شبه باشه به این تبریجی گفتم آیا میشه طرف این را ارتکاب کرد یا نمیشه بعضی از خوبه ها یعنی علامه منیسی قائل به جواز ارتکاب مشتبه این در دفعتن یا تدریج که چه دفعتن هر دارو برداریم یه لیوانش بکنیم بخوریم یا نه اولین استکان رو بخوریم بعدا ما یه جستکان رو بخوریم وقتی اولی رو داریم میخوریم میگیم تو همین وقتی دو اومدی داریم میخوریم میگیم انشاءالله ادوری نجس بوده این طوریه لذا ما نجس رو نخونیم دفعتن یا تدریجن نسبت دادن بلدامه مجلسی در کتاب عربعینش و ایشون قائله به جواز ارتکابه به جمله من نمی‌تونم بگم ایشون دفعتن رو قائله نمیشی بگیم چون با مذابش هم نمیسازه علامه مجلسی اصولیه ولو شکل اخباری ها رو داره ولی اصولیه در بهارش معلومه در کتاب های دیگرش هم معلومه اصولیه خیلی ماهری هم هست بعد ایشون رو نمی‌تونیم نسبت بدیم به اینکه جواز جوازه اتقاب دختی هر دو من شک دارم این دوتا لیمان کدامش ندیده هر دو می‌کنم یکی رو میخورم که شما بردن <تصفيق> میگن در فتن دیگه نوشتن به دالا شیخ انصاری که آورده نمیدرم نسبت چی بوده چرا و اینو در ادعایشون چیه در که میشه طرفین رو ارتکار کرد. حالا یا در فتن یا تر دلیل شمول عدده برایت عدده بر کن بشه این دنگه اطراف شما رو میگه که گفته اختصاص به شما هاته داره حتی تعرف و به اینهی به اینهی یعنی به علم تفصیلی اگه برات معلوم نشه میتونی ارتکاف کن اینطوری نسبت میدن به علامه و قایلا به اینکه اینشون طرف این رو میگه جایز ارتکاف بشه حالا ارتکاف به کل اینه قضی و عدی الذلله علم التفسيلي دلمره وتبه عن وقت فقط لا يوعدي بعضی از موارد منجر به علم تفصیلی میشه بعضی از موارد منجر به علم نمیشه در مواردی که ارتکاب تدریجی باشه منجر به علم نمیشه احتمال مخالفت میره ولی علم تفصیلی حاصل نمیشه علم تفصیلی عند ارتکاب حاصل نمیشه ما اولی رو داشتیم می‌خوردیم گفتیم دومی دو از اولی رو که داشتیم می‌خوردیم مرتکب حرام نبود دومی دو هم داشتیم می‌خوردیم گفتیم اولی بوده پس این ارتکاب ارتقا دو برای دومی هم ما مرتکب حرام نشدیم از علم تفسیری به ارتقا به حرام حاصل نمیشه، این عمل این عمل حاصل نمیشه بعداً علم به ارتکاب به حرام حاصل میشه علم به ارتکا به که که حرام نیست. این دفقت ها هست بعد از این که هر دور کردیم علم به ارتکاب هم حاصل میشه علم به ارتکاب هم نیست اقاب ندونه و این دفقت ها مقبوله اینطوری ما بیان بگیم مقا اولین رو بخور دوبومی هم بخور بعداً نهایت علم حاصل میشه دیگه فقط دفعت هم نخور نمیشین هر ها رو بزنیم ولی حالا زدن سوریگین دارن شهیستت در حلقه دو داره در حلقه هسته داره که بعد از ارتکاب طرف این تدریج علم به ارتکاب حرام حاصل میشه علم به ارتکاب حرام هم که حرام نیست ولی بعضی از موارد ارتکاب طرف این منجر به علم تفسیری به مخالفت میشه این ندرمه نه مثل موارد تدریجی <تصفح> مثل این مثال. کما لبشترا بل مشتبهین بل میته یه گوشت مذکا محدود شده رو میته و الان این مشتبهین بل میته است ما این دو تاره میخواییم ببینیم یک کنیز بخواییم جایز یا جایز کمال کما لبشترا بل مشتبهین بل میته جاییت نه و اینا نعلم و و این این علم تفسیری متوضد از علم اجمالی نه نعلم و تفصیلن بطلان البی فی تمام الجامعه نصف گوشته میته بوده ولی بی در تمام جاریه باطنی میشه <تصفح> چرا؟ به خاطر اینکه که واجب بوده ما حتی اون مزاکار ما کنار میداشتیم میته وقتی مشتبه میشه به مزاکار هر دو باید بره کنار شما ما هر دو رو آورگی استفاده کردیم کنیز خریدیه و این بی در تمام جاری باطن میشه این نظر مشهور بین پاقه هاست و نه اندم به حرمت هایزن ها بعد بطلان بیده ها حالا این تفسیلی بوده در رسائلم اومده و من احاضر تفسیل الموجود به مقام لم از هرمین کلام قایده به جواز ارتکار مشتبهین اخراج هازه سوره یعنی علامه مجلسی که قاید شده به جواز ارتکار به این, این موارد خرید جاری با مشتبه این به میتر رو خارج نکرده نگفت در اون قسمت نمیشه قایده به جواز شده مطلب این قسمت رو اخراج نکرده و وقتی اخراج نکرده مهم این معناست که علم تفصیلی متبدده از علم اجمالی مطلقا اعتبار نده میخواد مستلزم علم به مخالفت قطعیه باشه میخواد نباشه علم تفصیلی به مخالفت حاصل بشه یا نشه اینا اینطوری قابل هست ولیکن در خراسانی در دوران رو فواهد آشیه ناقشه مناقشه سوبرا داره به این که این بی بی اجاریه. از موارد علم تفسیری متولد از علم مجموعه نیست. فرمودن علم تفسیری اصلا نمیشه. علم تفسیری متولد از علم مجموعه نیست. لذا مناقشه خراسانی سوبرا به خاطر که ایشون قائل به این که میته. غیر قابل نقل و انتقال منطقه در موارد علم تفسیر در موارد علم تفسیر میته غیر قابل انتقال ولی در موارد اشتباه نه در موارد اشتباه سلمی تطول و یجوز و, و فیها و اینه که میگن بعضی از اصولی این فرخشون نیست یعنی هست کاملا غیر اصولی بزرگ منطقه فرق باشید فرمی تطور مشتبهه فرموز یدیوز و اختهام و فی ها و المعاملت و معاملت المذکا شرعن و فی تمام جاریت زهید زفته پنجه و چهار از دره رو اینطوری قاید شده میته ای که معلوم به علم تفصیلی باشه اجتناب از اشتیاریست ولی میته که معلوم به علم اجمالی باشه اجتناب از اشتراز. لازم نیست اون چاپی که خطی نه بعدا یک چاپ داره پرن. من الان شفقو دارم میگم شفق میفروشه که غروب چینی شده من شفق رو دارم میگم کوچه آمار آره اونها دارن تکون 54 اون خاطیار نمیدونم خاطیار که نمیشه بگم من الان در وسط یه مکان صفو فر میم نرمکساش غروب چینی شفق کده دیگه تفاصلا نمیدونم من الان خود دوره دارم میگم حالا مراجعه کنید قائل به جواز اتمام شده مشهور قاعدم به اجتناب منطق آخون دفراتانه قاعده به زواز ارتکاب و اختمان حالا این نظریه ایشون معیل نظریه میشه ولی باز غیرفنیه باز غیرفنیه چرا؟ به خاطر اینکه سابقا در صفحه 121 از این جزاقات قائد شدیم به اینکه که تفسیر از بین علمان و ذات لذا موارد این خیلی مهمه ها خوبای اتقال موارد اشتباه به از مباحث علم خارج. بلکه تحتیه قائده بگم ذاتیات مطلقا از مثب علم مجمالی و مباحثش خارج یعنی ما در مباحث المجموعی از ذاتیات بحث نمید. از ذاتیات بحث نمی‌شه ذاتیات در بابه المجموعی یا میره به طرف شک بدوی یا میره طرف علم تفسیر. بنابراین اگر این قاعده رو بتونید برا خودتون تثبیت کنید که ذاتیات از باب المجموعی خارج هیچ موقع در رابطه با ذاتیات به علم اجمالی استناد نکنید؟ هیچ موقع چه ذاتیاتش مثل میته باشه که تحریم ذاتی داره و چه جنابتی باشه که متقون به ذات و شخص ذاتیات مطلقا از باب علم اجمالی خارج چون علم علماجمالی منچز خصوص عناوین و اینو واقعا اونایی که اهل فتر هستند هستن همین درده رعایت آیت می کنن آخوند و هم همین نظریه الان پیش منتها منطقه این بر مینده ور انداخته یعنی مشتبه میته طرف به تفسیری و بیوسته طرف شک بزوی انداخته و اله کل به اینی که ثابت نیست با علم اجمالی ما علم اجمالی داریم ببینی که معذاری و آثار بر و اگر کسی مبانی رو بفهمه پیشرفته اصل مبانی آه. ببین یک <تص> دو سه بنویسید یک علم تفسیر دو علم اجمالی سه شک بدی. در مورد علم اجمالی المشتبهین بالمیته اونها رو مثال داخل برنامه بنویسید المشتبه ها بل میته این رو مشبور بردن به طرف فلم تفسیرین یعنی یه فلش به طرف بالا بزنید بردن اونجا قائل به وجوب اجتناب مطلب آخوند خراستانی آورده پایین یه فلش پایین بزنید آورده از احکام شک بردوی برش مترتف کرده قائل به جواز اختهام شده مطلب مشتبه اینه بل میته رو مشبور محکوم به حکم علم میلمی می میدونن اجتناب مطلب رو درش میگن جاری آخون قائل به جواز اتهام ها ارتکاب شده یعنی حکم شده که برش ضرر برایشون طرفت گنده علاوه که در تقدیره مشتبهین محکوم به حکم المجمالی نیست یعنی از این باب خارجه بنابراین ما حرف بیراقی نمیذاریم علاوه که در تقدیره چه قول مشهور باشه چه قول آخون باشه مشتبهین بالمیته از مذهب المیمالی خان شده. که که علم تفسیری حاضر علم تفسیری داشته باشید اینا ببینید مشهور ترکمن قائلاً به اینکه مشتبهین بالمیته وجوب اجتناب داره و اینا موضوعاً که علم تحصیلی بشه ندونید. معلوم بالاجمال مشتبهین بالمیته ولی محکوم به حکم علم تفسیلی ما میگیم اگه موضوعا علم تفسیلی بهش حاصل بشه ما ذاتیات رو گفتیم. از من تداخل نکنم من, من گفتن یه قاعده ای از قاعدینی که ذاتیات از علم اجمالی خارجه خارجه بله ده رو راحت از باب علم اجمالی خارجه. وقتی خارجه حالا طرف شک بدوی میره یا طرف شک علم تفصیلی میره دو قسم. دو قسم. بعضیا یا شک بدوی که اون روز گفتیم احد اگه جنابه جناب ثابت نمیشه. یعنی حکم شک بدوی داره. ولی بعضی هاشون نه طرف همین تفصیل می ده. مثل میته چرا چون میته تحریم ذاتی داره و این تحریم ذاتی تحریم وضعی قانونیه تا 121 از همین تقویم خودم تحریم وضعی قانونی یعنی چی یعنی مشهور در مقام تا قائل به وجوب اجتناب از مشتبهین مشتبهین به میته وجوب اجتناب این وجوب اجتناب مستند به قاعده منجذبیات که مشهور میگن یا مستند به طالت عدم تشکیله که معصومین میگن یا مستند به قاعده شمولیت قانون که ما گفتیم یعنی اگر یک تحریمی تحریم ذاتی باشه مثل میته تحریم وضعی قانونی اصاف میشه و مقتزل قانون و شمون قانون نیست نه حکم اعتباریه برد... هر دو ببین یکی تحریم زنان جنوب تحریم ذاتی نداری ولی بر ذات ببینیم ما گفتیم ذاتیات خارجه ذاتیات از وابه علمجمالی خارجه نه اینکه تحریم ذاتی خارج باشه ذاتیات از وابه علمجمالی خارجه حالا یا حکم میشه که بزمی داره مثل عهد رومای جانو به خاطر نصوصش رو نگاه میکنیم بر شخص متببنه و مترده به عنوان نیست ذاتیات بله خدا الماخوت آملاخوتara Cherningiblok plPIBRE را بما شاید I.G.V.BRE Enf -,どして ave USC�� happy dated teenage time online? خدا المتا گذدt!!؟imi bizarre color. یا PUBIB RECHASE INصلGAPLINE BUT Toyota ve치 fund聯ργي님이bank 등반yahت بهundrect Be radmzagaینwo به Прرصمال من نادرید، صرف برامون برای درمان احتیاط, احتیاط منحل مشه. منحل مشه. این برای چی هست. منحل میشه منحل میشه. منحل میشه. نه این واقعیته. این الان ادامه بحثه قبل. ذاتی یاد از باب مجمل خارجی خارجی کجا میده یا به طرف علم یا به طرف شک یا ترخیص مطلق درش هست. یا اشتنابونه سلام دی <تصح> از یه باب دیگه از یه بله ببین ما الان بین دو ذاتی رو الان دو قسمش کردیم یکیش اعتباری شرعیه یکیش وضعی قانونیه نه دو قسمه نه خاص نشه یه ماشه کس ما اینو بنویسن پای تفصیل احنابه مونه اهده هما نجیسه نه زات زاد ما مخواهد بگیم بعضی از احکام در صورتی ثابت میشه که علم تفسیل بهش حاصل میشه بعضی از موارد نه آقا ادالت امام جماعت با ادالت فقیه چه فرقی داره ادالت امام جماعت رو از ظاهرش میشه کرد ولی ادالت امام جمعه و فقیه و مرجع تبلید با مباشره حاصل میشه چون واقعیه این اون ادالت متقوم به ظاهر ظاهر سلاح باشه این متقوم به ذاتشه بین این دوتای چرا فرق گذاشتن در باقی نماز جماعت با نماز جمعه خب تسبیح نکده ولی خب پر فقه ما فقه ما پره چرا در روزه ادالت ظاهری در اینجا ادالت واقعی الان من میخوام طلاق بخونم پیش عادل واقعی بخونم یا پیش عادل ظاهری بخونم فقها میگن عادل ظاهری چون رو عنوان رفته شخصی ظاهرا متعن به این عنوان باشه واقعا میخواد عادل باشه میخواد عادل نباشه ما کاری نداریم لذا بعدا اگه کشت شد که اون کسانه که ما پیشش طلاق خوندیم فاسق بودن باز طلاق ما درسته و اینا به شما باید نظر بدیم شما باید نظر بدیم اینکه پیش دو نفر طلاق خوند بعدا اینکه شفید که بالخم بودن اصلا مطمئن نفر بودن بودن چه کار دوباره طلاق نه د تو ظاهرش مهم بوده و ظاهرش برای ما محرد بوده دیگه پس داریم فروهات ما بر دو قسم ذاتی یاد از باب اجمالی خارجه وقتی خارجه یا سر از اجتناب مطلق در میاره اگر منحصر بشه به احکام وضعی قانونی که مقتضای قانون شموله در قانون جهل و شک ازنه شما نمیتونه بگی آقا من نمیدونستم این قانون هست اصلا جهل و شک و امثال اینها اوضنی ولی در حکم اعتباری چرا عضره ذاتیات خودش دوبست میشه ذاتیات تارتن اعتباری و شرقیه تارتن وضعی قانونی. اجتناب از میته حکم وضعی قانونیه مختبای قانونم هم شموع لذا مشتبه اینی میته حکم میته رو داره در خلاف آخوند خراسانی قاعده به جواز اعتقاب حدا شد لذا میگم بعضی از فقه فنی بعضی ها نیست این یک نمونه از فقه غیر فمنی باید نهی که آخوند همه ای نظریات باشه، این نظریات چین باشه ولی همه این نظریات این که اسم از اکلای ورد مشتبهین بین میتر و فرموده یجوز الاقتهام و فیم یعنی انویته مشتبه یجوز الاقتهام وقتی فرض نشه چون فریدن خریدان چند چیز نباشه بحث شده خریدانش هم گفته به صحیح دیگه هم صحیح قائل به جواز به شده و اگر نظر مشهور بگیریم نظر مشکوک می‌بینی بیگانه. به خاطر بیگانه ما جرم ماجرا مشکوک، چون اون ارزش حرفو بزنه. اونم از موارد یه معاملات حرام رو میخواد انجام بده اونا رو میشه یه طوری کرد شرط بگه بعض زمت رو بعدا من زمم رو دارم بری میکنم بگه در نمیشه در چیزی که تحریمش تحریم وضعی قانونی نمیشه و اتا جمله با دفاع نداری. یه تفصیلی در نظره علاقه به تقدیل زاد نه منظران که قانونی میشه قانونی میشه من خودتون تشکیز میدید سفقه 195 آخرین سطح نوشتم که مقتضاق قانون شمول نسبت به همه موارده موجهل و شک و احتمال لکه اون المعیار فیزالک و اهمیت و محتمل دونت احتمال نوشتیم من بعدا توضیح اجمالی هم براش میدیم الان خلال تقدیر در این فرع دوم قاعدم به این که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی اعتبار نداره چرا طبق به همین نظریه که مشهور قایدن در رابطه با خرید یک کنیزی با مشتبه این میته که اگر علم تفصیلی داریم به بطلان به در تمام جانیه و این علم تفصیلی رو چون فرقبایی به بطلان به دادن مشهور معلومی میشه علم تفصیلی متولد از علم اعتبار نداره و آخون و خوآسانی در این منناقاشه صمی کرده بر از این موارد حسصاب نمیشه قائل به جواز شده. ولی حالا این فر دوموارد ت ف... خود ت ت ببینید هرکی گفتن به گفتن اینا ممارست میادد به بحثی از اینکه اسکنب ممارست یا نظریه گ است. ممارست میخواه باید یه چیزا گفتنی نیست در کردنیه یود رنگ بلا میشه تحت الفاظ در بیاریم دو قسم کنیم سه قسم بکنیم میشه حالانم تو ذهنم هست ولی یه مقدار روزا ممارست برای حاصل بشه هی قرآن رو بشنوید گوش فکر کنید شما الان تا فردا بهش فکر کنید رو مبوره ادالت از خودم قسمه مترتب بر اینوان ظاهر و یا مترتب بر ذات یک شخصه کدوم میشه؟ توش تحقیل کنیم از روایت چی میفهمید؟ چیدار میکنید؟ در یه حده یکی دو ساعته نه که خیلی اسکی آب وقت باشه و وقت بگیره و خسته بشین در حده شمیدن ممارست میخواد یعنی یک ذهنیتی باید برای شما حاصل بشه که خود به خود بشنوید و بدونید الان هجاب هجاب زن مطالبته برای ایمان یا بردادشه کدومشه از علیه جا از کدوم. بازه امر به معروف و نهی از منکر از خودون و به همین نیاز به ممارست داره یه مردار تحلیل کنید بعضی ش... تو همین هشتا پر میاد چه مباحث فقیش چه مباحث قضاییش یعنی یه مردارشی میگیم بعد اون شیشتا راحت هم که ما صندوق رو باز به تفسیل میگیم نهایتش منتحی میشه به تفسیر بین انوان و ذات در ذات هم دو قسم حاصل میشه احد و حمای جنوب جنابتش اثبات نمیشه و هیچ استیحاشی هم نداره به خاطر این که های بزرگی داریم که فتوایی و عدمش دادن پس معیدم داریم منتحی داریم میخواییم به صورت یک نظریاتی در بیا میان بری باشه اینا نظریات رو پرونده میگن که ما مستند میکنیم به نائینی و دیگران میگیم اینا دارن اینا گفتن این از باب تعدبه و این تا واقعیتش اینه که اینها اینطور این تفسیر قائل نیستن چون هم اصولشون به یه سیر دیگه، مثلی دیگه, دیگه داره میره، هم فتاوایشون ما دیگه میخواهم بگیم که اینا همینا رو میخواستن بگن، اشکالی به مبانی اصولیشون به فتاوای که مترافع میشه و مبانیش وارد نشه، نظریاتیه روش فکس بشه تفصیل بین انوان و ذات یه نظریه جدیدیه و راه حل بزرگیه یعنی شما یه مجوزی میگیرید مثل که به شما یه پاسپورت بین‌المللی بگیری به هر کشوری می‌تونی وارد بشی نکنن نشکنم ضایع نشه به هر دیگران هم روش نکنید بعضی از ها میرن اینو به کسی انتقال میدن خب اخلاق در حوزه فول کرده اینا میان تحقیق میکنن نه تنها نظریه رو بلکه مال تخصیب میکنن میگن آقا اون چی از این چه میگن پشت سر ما. بعد اینها رو کسی قبول نکنه این حرفها نیست یعنی به این نیست که ما حتما باید درس سمیرزا 20 سال میرفتیم اونجا کنار استوانه توبه مینشستیم لازم نیست مزاقم بر اینکه که اساطید من قدر بودن برای خودشون اساطیدی که اینها فقه و چند لایه بلد بودن هر یاد گرفتم از انفاس همین ها بوده حالا درست متعدد متکرده رفتی ارتباط به سنم نداره حتما دازه این شما سی سال در خارج برید شما دو سال در خارج برو مهم درک مطالبه و سلیگه و ذوق میخواد و تمهوز میخواد اون آقایونی که این رو میزن تمحوز نداره همیشتو تو هم آدمی که از عمره بزنه به عتبات، از به بزنه، به مسافرت ییلاق و قشلاق و امثال اینها ایجاد تا داشته باشه، میتونه این مباحث درکش کنه. این حرفا چیه؟ رشته اونهایی که خودشون درکشون می‌رسه که این کلاس مفیده، این کلاس رو بیان. اونهایی که درک میکنن خوب نیست، مفید نیست، برن درس دیگه، از اون درسی استفاده کنن، به قوم یه حالت داره که هر نوع درسی شما بخواید هست. همه چیزم هم میگن عین جمع بازار ارزونم هست گرونم هست اینا وقت میبره اینا عمر تدخیم میکنه، اینا خونه جگر باید بخوری واقعا اینطور که کسی ناخاسته نمیتونه مبنا پیدا کنه الان شما تمام وقتتون رو این مبانی نکنید دستشی ندارید با تذرزب هم نخونید و فقط برا خدا درس بخونید یعنی درس بخونید که مکتب شیعه رو تاییدش کنید تقرییتش کنید پیش ببرید این هم هم مشاوره لازم نیست خود طلب سه جلسه توی درس بشینه میفهمه به دردش میخوره یا به دردش نمیخوره. لازم نیست از دیگری بکنید دیگری درس من نمومده کما که من خیلی از درستان قبول ندارم حالا بیام بگم چطوری تقریب کنم تاییدش کنم نه خیلی طبیعیه من خیلی از درس گفتنا رو نمیپذیرم اونطوری درس بگم خیلی راحته ولی خب مهم اینکه که جنونی به این نره. هر روز که میشینه باید یک مبنا یاد تا پیش بره هر طوطو فنش باید درسش بیاد طوطو فنام به دست نمیاد یه مقدار ممارست میخواد وقت بذارید فروقات رو پیدا کنید اینا همین طین دیگه انشالله کنید پیگیری کنید با talking about it as a